خیلی ممنون خدا نگهدار همه شما عزیزان ممنون بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله اعوذ بالله من الشیطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده و ونؤمن و نؤمن بهی و ونسلم و و نسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المعيد الرسول المسدد اب القاسم محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على من العام الى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه ساعت وفي كل ساعه وليا و وقائدا و ودليلا و حتى و و تسكنه ارزكت هو عا بتهمتاعه في هاد قبيله اسيكم و ابد الله بتهق الله و اخویفو کم من اقابه خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوا می کنم و از اقابش بر می دارم در روایتی از حضرت مولا علی علیه السلام رسیده عجب طل من یعلم اَنَّلِلْ اَعْمَالِ جَزَاعًا كَيْفَ لَا يُحْسِنُ عمله قُرَلُ الْحِكَمْ جِلْدِ دُو صفحه چهار و و پنج تعجب می کنم از کسی که می باید پاسخگوی رفتارش باشد عملش جزا داره چگونه به درستی رفتارش نمی اندیشید و تلاش در این ندارد که اعمال درست انجام بده تجسم عمل از معارفی است که شیعه و سنی در قیامت قبول دارند روز قیامت باطن اعمال ما خودش را نشان میده های بهشتی همون رفتار خوب مؤمنین هست و عذابها هم باطن اعمالی که انجام داده مراقب اعمالمون باشیم انشاءالله با اعمالمون بهشت برای خودمون تدارک ببینیم در خطبه اول سخن از سبک زندگی قرآنی داشتم با محوریت یا ایوهاللزین آمنوهایی که در قرآن هست از تفاوتهای اساسی که بین زندگی یک مؤمن و غیر مؤمن هست این است که مؤمن مبدع باور است خدا باور است معاد باور است و برای کسی که ایمان ندارد و مؤمن نیست این دو عنصر اصلاً مطرح نیست نه خدا مطرح است نه قیامت سوره صف آیه 10 و 11 خطاب به مؤمنین چنین میفرماید: یا ایها الذين آمنو، هل أدلكم على پنجیکم من عذاب علیم راهنمایی کنم شما رو به یک تجارت که خروجیش این است که شما رو از عذاب دردناک می رهاند یک معامله پرسو تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به وأنفسكم و این معامله پرسود دو انصر دارد یکی ایمان به خداست و یکی جهاد و هزینه کردن در راه او زالکم خیر لكم ان کنتم تعلمون این معامله معامله سوداوره سه نکته در این آیه هست که در فرصت محدود میتونم بگم و الا نکات فراوان هست نکته اول اینه از نگاه قرآن دنیا بازاره تو این بازار یک کالا هست به نام جان و یک فروشنده هست به نام انسان و دو خریدار مدام جار میزنن که ما خریداریم یک خریدار شیطان هست و یک خریدار هم ذات مقدس ربوبی باید چشم را باز کرد که در این معامله ببیند آدم این کالا را به کی میفروشه؟ اگر این کالا را به شیطان فروخت تعبیر قرآن اینه که باخته به سمشتر و بهی انفسهم بقره نود تعبیر قرآن اینه سودی در این معامله نیست فما ربحت تجارتهم هم بغره آیه شونزه بالاتر سرمایه باختن قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه بازنده سرمایه اونها هستند که این سرمایه را تو دنیا به آتیش کشیدند به جای اینکه بیارند آخرت معامله با شیطان هم گناه معصیت فروختن کالای جان به شیطانه خریدار دوم خداوند هست که خیلی گرون می‌خاره سوره توبه آیه 111 ان الله هشت حرام من المؤمنين ان فصحهم و امبالهم بأن لهم الجنة عمر شص سال هفتاد ساله کمتر بیشتر تا آباد نیست به خدا میفروشه اما در برابر این بهشت ابدی رو میخره قرآن در همین آیه میگه زالکل و العظیم برنده نهایی این میدان اینا در کلمه قصار چهارصد و و شش نهجل بلاغست یاد او حاضه لما یک آزاد مرد نیست که این پس دنیا رو به اهلش واگذارد انه لَيْسَلَ انْفُسِكُمْ سمنون إِلَّا الْجَنَّةِ قیمتتون بهشته با کمتر از بهشت خودتون را بفروشید نقطه نکته اولی که از کلمه تجارت استفاده میشه نکته دوم اینه در این تجارت با خدا دو انصر هست یک ایمان دو جهاد تلاش در راه خدا یعنی کسی که میخواد تو این میدان معامله کنه این دو انصر را باید به میدان بیاره ایمان عبارت است از خدا باوری با تمام وجودش قبول داشته باشه لا مؤثرة الوجود الا الله همه کار خداست او سببساز است گفتن موسایی متولد میشه تاج و تخت تو سرنگون میکنه فرعون هفتاد هزار بچه پسر سر بری اما خدا اراده داشت همین موسا در همین شرایط متولد بشه و تا 20 سالگی تو کاخ فرعون زندگی کنه این خدای سبب ساز ایمان به خدای سبب سوز ام بوه هیزم آوردن برای آتش زدن ابراهیم با منجنیق آوردنش بالا گر رو گر آتیشا داره میسوزه اما با آرامش نشسته قلنا یا بردن و من علا ابراهیم سبب سوز یعنی گفتیم آتش بر ابراهیم ما گلستان باش این خدا رو باور کنیم این انصر اون صدیس که در این بازار خیلی خیدار داره نه ایمان شعاری قالت الاعراب آمنا قلتم تؤمنون سوره حجرات آیه چهارده نه ایمان مقتعی موسمی موقتی فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له فلما ما نجاهم الالبر ازاهم یشرکون ان آیه شست ش نه ایمان منافقانه و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به بقره هش نه ایمان عافیت طلبانه پای پلوی دین نشستن سختی های دین رو تحمل نکردن، لوکان عربان قریبان و سفران قاصدان لتبعوک، ولكن بعدت عليه مشوق سوره توبه اگر یه سفر کوتاهی باشه منافع داشته باشند، همراهی میکنن و الله همراهی نمیکنن. این ایمان ها ایمانها این نیست. کالای مرغوب باشه، کالای مرغوب کدوم صداقت در ایمان، حجارات، حنزا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم و في سبيل الله با صداقت میگن خدا و پاشوای میشن، هزینههاش رو تحمل میکنن. ایمان صادقانه همراه با گذشته گذشته از راحتی و رفاه گذشت از شهوت گذشت از غضب گذشت از آبرو گذشت از مال گذشت از جان که بالاترینه لن تنالو البر حتی تنفقوا ما تحبون وقتی به مقام ابرار میرسید از آنچه دوست دارید در راه خدا انفاق کنید از جان بالاتر چیست فوق کل بی بر حتی قتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر بالای هر خدمتی خدمتیز اما وقتی جان در راه خدا داده شد بالاتر از این دیگر خدمتی نیست این ایمان ایمان صادقانه است نقطه آخر هم زالکم خیر لکم سراسر سود اینجاست اگر خبری هست اینجاست جای دیگه هیچ خبر نیست با خدا معامله کنید ابدیت رو خواهید خرید زندگی قرآنی چنین زندگی خدا باوری درش موج میزن پروردگار همه ما را موفق به این زندگی که به تعبیر مولا علی تجارتون مربحتون هست ما را موفق به این زندگی بفرما پرودگاه را به ما توفیق انایت کن که دنیا تجارت خانه معنوی ما باشد از دنیا متجر و اولیاء الله بار دیگر همد و الله جل شأنه رو دارم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا اب القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین اوصیکم و نفسی عباد الله بتقوى الله و من عقابه بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عزو بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده و ونعوذ و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا و اله الا الله وحده لا شريك له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 و علا فاطمت الزهراء سیدت نساء العالمین و علا الامامین الحسن والحسين سید شباب اهل الجنة اجمعین و علا ائمت المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علي و ابن محمد و بن جعفر وعلي ابن موسا و محمد ابن علي و علی ابن محمد والحسن ابن علي الزكي العسكري والحجة القائم اللهم افتح له فتح يسيرا وانصره نصرا عزيزا اسيكم و نفسي اباد الله بتقوال الله و, و کم من عقابه خودم و شما خوبان رو دعوت به تقوای الهی و بر داشتن از عقابش مینمایم مولا علی علیه السلام در نقلی که در بهار الانوار جلد 68 صفحه 181 آمده است می هر روزی که بر انسان می گذرد روز قیامت اون روز هر روزی که بر انسان می گذرد اون روز به مردم انسانها می گوید انا جدید من روز جدید هستم فردای قیامت گواه عملتون هستم و انا علی که شهید فقل فی ی خیرا عمل فی خیرا تلاش کن در این روز درست عمل کنی گفتار درست رفتار درست داشته باشی لك لکبهی يوم القیامه روز قیامت گواهی بدم فا لن تراني ترانی ابدا امروز دیگه برگشتنی نیست انشا الله قدر بدانیم و هر روزی که از عمرمون میگذرد به بهشتمون و به قیامتمون نزدیک بشیم در خطبه دوم هشت مناسبت هست و چهار تحلیل دارم چون نگرانم وقت کم بیارم از تحلیلها مناسبت ها رو آخر خطبه دوم میگم ولی یک مناسبت است که در آغاز سخن محضرتون مطرح میکنم سشنبه شنبه و زیقعده مرداد بله سه شنبه و زیقعده شهادت امام باقر علیه شهادت امام جواد علیه السلام هست جوانترین ترین امام شیعه که در سن 25 سالگی به شهادت رسید و در این مدت کوتاه این امام بار امامت رو به خوبی به دوش کشید امید که همه ما جوانان و غیر جوانان به این امام بزرگ داشته باشیم و راه و مسیری که او پیش روی ما گذاشته است راه بندگی خدا یکی به امام جواد گفت مرا نصیحت کنید امام جواد فرمود گوش میدی یا نه میشنوی از اون گوشت بیرون میکنه گفت نه آقا میخوام بشنوم نسایهی فرمود یکیش اینی که وعلم لن تخلو و من عین الله فنزر کیفت کن در محضر خدا هستی ببین که چگونه رفتار میکنی و اما چهار تحلیلی که دارم اولین تحلیل مربوط به شهادت این جوان پرافتخار ایران اسلامی شهید محسن است باران رحمت بارید بر کشورمون خون پاک این شهید فضا اطر ایثار گرفت اطر شهادت گرفت سلام و درود و رزوان خدا بر روح بلندش هشت نکته آماده کردم یک شهید هججی از رویش های انقلابه آقا فرمود ریزشها و رویش ها. کسانی بریدن به تعبیر شهید مظلوم بهشتی که در انقلاب مثل یک قطار تو هر ایستگاهی ادعای پیاده میشن ادعای پیاده میشن اما ادعای سوار میشن این شهید سال هفتاد و یک متولد شده نسل سوم انقلاب محسوب میشه شهادتش این پیام رو داد که بیاری یاری خداوند نسل دوم نسل سوم انقلاب در دفاع از انقلاب اگر پرانگیزه تر از نسل اول نباشند همانندان آنها هستند. دو، این همه آوازه ای که شهدای مدافع حرم دارن به برکت اخلاص اونهاست همه عزیزند همه نور چشم ما هستند اگر مخلص نبودن که این هدیه شهادت نمی دادن هر پک که شد قابل فیزور هر و گلی لول و مرجان نشود این تجلیل ها رو شهید حججی از اخلاصش داره دو سال پیش التماس میکنه مادرش را که به من اجازه بده برم سوریه این التماس سرمایه ای جز عشق به خدا نداره وسیعتش را هم همتون شنیدید این نکته دوم سه از زبان شما مردم تشکر میکنم از فرماندهان رشید سپاه اسلام به ویژه سردار رشید حاج قاسم سلیمانی که گفتن انتقام میگیرید آفرین در این عرصه شما تجلی صفت منتقم خدا هستید که ان الله عزیز و انتقام ابراهیم 47 خداوند منتقم هم هست سپاه هرگاه میگوید انتقام میگیریم دشمنان یقین بدانند انتقام سختی در انتظار اونها هست و این عین مهرست عین اطوفت هست ستمکاری طرح هم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود برگوز فندان به همین زودی ما منتظر آنیم که خشم و قذب و قهر خدا توسط این بازوهای پرتوان ایران اسلامی بر داعش جنایتکار فرود بیاد چهار جرایان داعش چهار انوان فقهی اعدامی دارد داعش مفسد فلعرزند داعش محارب با خدا و رسولند داعش باقیند و داعش ناسبیند قلع و قمع اینها واجب شرعیست به خصوص خصوص شمری که همراه این شهید ما با خنجر می آمد عنوان پنجمی دارد امیدوارم به همین زودی او هم به دست حزب الله و به دست عناصر رشید اسلام نفله بشه پنج بدترین جنایت رو این جنایتکاران به الله و اکبر می کنند در طول تاریخ این جنایتی که داعش های جنایتکار به الله اکبر کردن نکرده مسلمان میکشند لا اله الا الله گو میکشند و الله اکبر میگن لعنت بر شما که این اینچنین خیانت به اللهی دارید که تو استفاده از نام مقدسش میکنید شما نام مسلمانید شش خون شهید کوسره سردار جعفری فرمود سی هزار جوان مثل شهید حججی داریم از اون روز تا امروز که خدمت شما هستم بسیاری از هم سن و سالهای شهید حجاجی به ما رسیدن سلام به آقا برسان و به آقا بگو همه ما حجاجی هستیم هف این خونها خونهای پاک سرمایه نفیس این کشور است کمترین توهین به این خونهای پاک شرکت در جنایات داعشه صاحب قلم ها، صاحب سایت ها، صاحب کانال ها مراقب باشید از خطوط غرمز عبور نکنید تشکر میکنم از شورای نظارت بر که برخورد کردن با اونها که توهین به این خونهای پاک دارند 8. اینجا جا داره تجلیل کنم از شهر شهید پرور نجف آباد زادگاه این عزیز این شهر است شهری که قبل از انقلاب امان سواک رو بریده بود ذله کرده بود سواک رو بعد از پیروزی انقلاب هم در جبهه دفاع مقدس اینها به تنهایی ای یک لشگر داشتند و همچنان دارن شهری که شهید سلشگر کازمی ها رو پروریده اینجا جدا جا داره تشکر کنم از پدر شهید حججی مادر شهید حججی همسر شهید حججی که به خوبی نشان دادن یادگار ارزشمند شهیدن هفته قبل که تو نماز جمعه بودم دیدم یه شعاری برخواست شهید سر بریده شهید سر تا اینا شما گفتید یک مرتبه روهم پرواز کرد کربلا روح همه شما هم پرواز کرده پدر شهید مادر شهید بستگان شهید سربریدن بریدن را دیگه ندیدند اما ببینم برات حسین همه آمدند بالای تل زینبیه فقط زینب نیامده یعنی رقعیه سه ساله آمده یعنی سکینه پنج ساله آمده یک مرتبه همه ببینند و شم رو جالسون علا صدره شم خنجر کشیده او می برید و من می بریدم. او از حسن سر من از حسن دل السلام علی الحسین و علا علی بن الحسین و علا اولاد الحسین مطلب دومی که در تحلیل میخوام بگم کابینه دوازدهم در حال شکل گرفتنه دو سه است در مجلس تا الانش احساس میکنم نسبتا نقدها گفتگوها نقدهای سازنده بوده امشالله به همین زودی کابینه شکل میگیره تا حرف به وزرایی که منتخب خواهند شد دارم یک شما را به خدا قدرتتون را در خدمت دین معنویت ارزشها ها به کار بگیرید ولیان سرن الله من یان ان این الله لقویون عظیب الذین این مکشان آهم فل رو در خدمت گسترش عرضش های دینی به کار بگیرید از قرآن استفاده میشه مسئولیت داره حکومت در قبال دین کاری به استلهات ندارم دین حکومتی حکومت دینی از این آیه به خوبی استفاده میشه نکته دوم این است وزرای منتخب بعدی عرصه کلان خدمت در اختیار شما قرار گرفته. به این مردم خدمت کنید. جناح مدار نباشید. هزم مدار نباشید. خدمت مدار باشید. سید و فرمود اعلم و انه الناس جناس الیکم من نعم الله همین که عرصه این خدمت در اختیار شما قرار گرفته این نعمت الهیست شکر این نعمت خدمت است. سه دو توصیه مقام معظم رهبری به همه دولت مردان داشتن مد نظر شما هم باشه یک متدینین را نرانید خوندرو به اینها نگید افراتی به اینها نگید روز حادثه اینا به کار میان یک این نکته مهمه انتخابات آزاد انتخاباتی است که حین انتخابات و بعد انتخابات است. این معقول نیست که یک کسی که متدینه لایق درست کار کرده فقط به خاطر این که به کاندیدای رقیب رأی داده از کار بر کنار بشه این درست نیست به سراحت این سخن را میگویم نمیگم بر کنار شده یا نشده دارم آینده را میگویم دوم سفارشی که دارن اینکه که فتنه خط قرمزه از حامیان فتنه در های کلیدی استفاده نکنید این ف چهارم این است دولت دولت مشروع است همه دولت های بعد از انقلاب با تنفیز ولایت دولت های مشروع همه ما وظیفه حمایت ناسهانه از هر سه قوه داریم ناسهانه یعنی خوبی ها رو ببینیم باریکلا بگیم موارد نقدم سازنده نقد کنین اپوزیسیون دولت بودن در جمهوری اسلامی ایران جایی نداره و هیچ یک از متدینین و انقلابیون در کشور ما اپوزیسیون نیستن این هم نکته دیگر هفته دولت هم هفته آینده است گرامی می‌داریم هفته دولت را و امیدواریم که این عزیزان این عرصه خدمت رو قدر بدانند شیعه کشی در افغانستان رو محکوم میکنیم ما مسلمان کشی در هر جای دنیا شیعه باشد یا سنی از الله لبنان شیعه حمایت میکنیم از غزه سنی مذهب هم حمایت میکنیم به این معنا که سنی کشی و شیعه کشی هر دو را غلط میدانیم. این قصه ای که در افغانستان اتفاق افتاد جگر هر مسلمانی را سوزان 50 نفر رو بی گناه سر بریدند و دهها ها و صد ها نفر رو این جنایتکاران آواره کردند و اما آخرین حرف رو بگم زیاد طول ندم مسئله جنایات نژادپرستان در امریکا هست دیدید در تلویزیون شنیدید در رسانه ها که نژادپرستان قا... کشتند، غارت کردند از همه عجیبتر این که رئیس جمهور امریکا که باید حافظ منافع مردم باشه اینو محکوم نکرده اگر این زیر پا گذاشتن حقوق بشر نیست پس زیر پا گذاشتن حقوق بشر چیه امریکا در خط مقدم زیر پا گذاشتن حقوق بشر باید خجالت بکشه از اینکه در رابطه با حقوق بشر در دیگر کشورها اظهار نظر کند نیز داعشی که خود پروریدند ماری که خود در آستین پروریدند در اسپانیا جنایت میکنه هنوزم که هنوز است شهید عزیز ما حججی را امریکایی ها کشتند اونها با مارن کردند داعش های جنایتکار آمدند اگر بشریت میخواهد از این بلا برهد به خصوص کشورهای اروپایی فشار بیارن بر دولت هاشون که دست از حمایت این جنایتکاران بردارند سی مرداد وقتم تمام سی مرداد سی مرداد روز به آتش کشیدن مسجد الاغصا هست چهل و هشت سال پیش روز جهانی مسجد نامیده شده به این بهانه از جنایات رژیم صهیونیستی گفته شود تا این رژیم قاسب و جنایتکار فراموش نشه روز سی مرداد روز بزرگداشت داشته علامه مجلسیست این بزرگی که در نشر مکتب اهل بیت در این کشور نقش ای داشت سال روز آغاز بازگشت آزادگان گرامی دیروز بود ما ارج می نهیم فداکاری و مقاومت این عزیزان رو فردا سال روز کودتای امریکایی 28 و مرداد سال سی و هست که امریکایی های جنایتکار شاه را برگردوندن 25 سال دیکتاتوری جنایت رو بر این کشور حاکم کردند و تا امروز که شست سال از اون ماجرا میگذره همچنان جنایت میکنند یکم زلحجه سال روز ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله عليه هست که بهترین زندگی الگو این زندگی است انتخاب اعضای محترم مجمع تشخیص مسلحت به ویژه آیت الله شاهرودی فقیه عالی قدر رو تبریک ارز میکنم از خداوند توفیق بیشتر این عزیزان و آخرین مطلبم سیل در برخی از نواهی کشور جان اده از عزیزان را گرفت و ما را زده کرد از خداوند طلب مقفرت برای اون عزیزان و صبر و عجر برای بازماندگانشون داریم از مسئولان محترم انتظار می رود که با شتاب بیشتر به مشکلات آسیب دیدگان رسیدگی کنند پروردگار اسلام و مسلمین نصرت انایت بفرما دشمنان اسلام خار و ذلیل بفرما مقام معظم رهبری در پناهت موفق و معید بفرما امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصت قرار بده فرج امام زمان ما را برسان بسم الله الرحمن الرحیم قل هو والله اخد الله أحد الله الصمد لم یلد ولم يولد ولم یکله کوفوا احد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته